من وارد شدم و نشستم و معلمم لو هم رو خواند او گفت چیزی جا افتاده است و مرا به چوب بست. یکی از آدمهایی که مسئول بود گفت چرا دهن تو بدون اجازه باز کردی و مرا به چوب بست. کسی که مسئول اجرای قوانین بود گفت چرا بدون اجازه من بلند شدی و مرا به چوب بست. دربان گفت چرا بدون اجازه من بیرون میری و مرا به چوب بست. مسئول ظرف نوشیدنی گفت چرا بدون اجازه من برداشتی؟ و مرا به چوب بست. معلم زبان سومری گفت چرا به زبان آکدی حرف زدی و مرا به چوب بست. معلمم گفت دستخطت خوب نیست و مرا به چوب بست. سلام علی سخاوتی هستم با برنامه ششم پادکست 822 امروز یک شنبه 22 اسفند 1395 یکی از شنوندگانم پادکست را گوش کرد و گفت امروز که دوشنبه نیست و مرا به چوب بست متنی که براتون خوندم از یک لوح پیدا شده در منطقه بین و نهرین بود که مشق نوشتن یک دانش آموز را حدود 4000 سال پیش نشون میداد زمان ما هم تقریبا همین جوری بود بعد کم کم تغییر کرد تا همین ده 15 سال پیش به این طرف این جملات رو با جملاتی شبیهی میشه جایگزین کرد معلم ریاضی هم دید من دو را با دو نمیتوانم جمع کنم به من پیشنهاد کلاس خصوصی داد مدیر مدرسه دید بچه ها خواندن و نوشتن بلد نیستن برای آنها کلاس فوق برنامه گذاشت مسئول بوفه مدرسه در زمانهایی که مجاز به فروختن خوراکی نبود خوراکی را با قیمت بیشتری به ما فروخت پدرم دید من هیچ چیزی در مدرسه یاد نمیگیرم برایم معلم خصوصی گرفت مادرم نگران یادگیری من در مدرسه بود مرا به دانشگاه فرستاد ناظم مدرسه به مادرم گفت بچه شما استرس کنکور دارد برایم مشاور روانشناسی گرفتند مشاوره تحصیلی به من گفت تو باید هدفت را انتخاب کنی من بیشتر استرس پیدا کردم کسی که مسئول کنترل گوشی موبایل بود گفت توانی گوشی به داخل مدرسه ببری من آن روز مدرسه نرفتم مثلا اصلا این چرندیات با واقعیت مطابقت داره یا نه من 25 سال مدرسه نرفتم اصلا بچه ها مدرسه هنوز میرن سال 1395 الان کسی مدرسه میره بچه ها؟ مدرسه میرن؟ خب در هفته‌ای که گذشت من دوباره دیگه نون پختم امیدوارم که شما هم پخته باشین و داستان نون پختنتونو به 822 ات بفرستید دفعه دومی که نون پختم از دفعه اولم بهتر شد یعنی بهترین نونی بود که من تو این سه دفعه پختم ولی دفعه سوم از هر دو دفعه یعنی حتی از دفعه اول بدتر شد چرا؟ به خاطر اینکه رسپی رو رعایت نکردم یعنی طبق معمول یعنی طبق عادت هر آدمی و طبق طبیعت انسانی شروع کردم به تغییر دادن در رسپی و انگولک کردن در کل فرایند کل فرایند که مهفریتش این هست که شما 18 ساعت هیچ کاری نکنیم و بعدم خمیری که به دست میاد و تلب بندازی توی ظرف و بذاری به پزه من این تغییرات رو درش دادم اول از همین که طبق توصیه مادرم یه قاشق چایخوری شکر به خمیر اضافه کردم همون ابتدا و بعد بیشتر از 18 ساعت گذاشتم موند که البته خب دلیلش این بود که من خونه نبودم اون روز و دیر برگشتیم مجبور شدم که حدود 24 ساعت خمیر رو بذارم تخمیر بشه بعدم که خمیر رو از ظرف در آوردم و چونه کردم گذاشتم دو ساعت موند موقع چونه کردن بیش از اندازه دو دفعه قبل ورزش دادم که به نظر کاملا غیر ضروری اومد و... زمانی هم که انداختنش تو ظرف مثل نونسنگک یا نونبربری خمیر رو برای اینکه درست توضیح بشه در کل ظرف با دستم پخش کردم و در نهایت محصول نهایی به اندازه دفعات قبل خوب نشد هر کدوم از این دلایلی که به شما گفتم میتونه آمل این پایین اومدن کیفیت باشه یا نباشه هیچ مستندات دقیق علمی وجود نداره ولی حدثم اینه که وقتی شما کاری رو باید انجام ندی انجام میدی نتیجهش خوب آب در نمیاد. به خصوص دفعات اول تا اینکه بفهمی کجای کار غلطه وقتی من به آدما میگم که من یعنی وقتی هم من میپرسم تو چی کار میکنی وقتی هم میگم کاری نمیکنم، اولین سوالی که هم من میپرسم اینه که اوه همیشه شما درآمدتون از کجا میارید شما از کجا میخورید انگار که بزرگترین مشکل کسب درآمد یعنی اگه شما مشکل درآمد نداشته باشی مثلا یه ارسیه بزرگی به ترسیده باشه و چه میدونم 20 تا آپارتمان داشته باشی که اجاره‌شون رو بگیری و بخوری بعد کار راحته میتونی بشینی و از زندگی لذت ببری این آدم‌ها در نظر نمیگیرن که ترین کار یعنی مشکل ترین قسمت کار اینه که بشینی و به اون ظرف خمیر دست نزنی این تیکش سخت قسمت کاره یعنی شما خمیرتو درست کردی که اینجا خمیر رو میشه تشبیه کرد به اون زندگی زندگی شما درست شده حالا باید،, حالا باید وایسی تخمیر یا مجیک یا کیمیا یا هر چیزی که اسمش هست بدون دخالت دست بشر که شما هستین اتفاق بیفته زمانی که شما میخواین کنترل رو به دست بگیریم و شمای کاری بکنین نتیجه کار خراب میشه اگر واقعا چنین زندگی ایدئال شماست یعنی دوست دارین که هیچ کاری تو زندگی نکنین چرا امتحان نمی همین الان هر کاری که میکنید رو ول کنید و هیچ کاری نکنین فکر میکنین کار ساده ایه کار ساده ای که از صبح تا شب برنامه ای کسی به شما نده باشه نه معلم، نه استاد دانشگاه، نه رئیس، نه ترافیک خیابون سخت در این قسمت اینه که صبح پاشی و ندونی که یک ساعت دیگه چی کار باید بکنی دو ساعت دیگه چی کار باید بکنی و تا شب ندونی چی کار باید بکنی من داستانم واسه هرکی تعریف میکنم فکر میکنه من تو بهش زندگی میکنم فکر کار اینه که بشینی تو خونه و کتاب بخونی. اگه فکر می‌کنی این قراعاتی خب شرط تستش نمی‌کنی در هر صورت من برای صد هزارمین بار در سمو یاد گرفتم که وقتی میخوای کنترل یه فرایندی که بزرگتر از شماست به دست بگیریم نتیجه کار معمولاً اونجوری که فکر از نازاب در نمیاد و بعد چیز جالبتر از این, این اینه که سه بار که شما نون پختین یعنی فقط سه بار که نونی پختین به اندازه‌ی فقط یه نفر یعنی یک قرص نان که توی کارتونای دهه 60 و هفتادی که پخش میشد و ما می دیدیم به فقرا و گداها و کارگرای معدن میدادن همچین نونی شما درست کردین درست بعد از سه بار این فکر به سرتون میزنه که شما کارآفرین خیلی عالی میتونین واشین و و نون بپزین و بفروشین حالا قطعا یه بیزنس خلاقم به ذهنتون میاد که میتونین یه بیکری یه جای شیک باز بکنین و مردم فوج فوج بیان و نونای شما رو بخرن چون شما تونستیم برای اولین بار در تاریخ بشر یک نون خیلی خاص خیلی عجیب قریبی رو بپزین که میلیون ها مشتری داره و این فکر سمیترین فکریه که من فکر میکنم هر کسی که یک چیزی رو پخته ساخته نوشته نمیدونم هر چیزی که از خودش پست داده رو وقتی جور چشاش میبینه بلا فکر میکنه که میتونه در قالب یک طرح کارآفرینی این رو به بازاری عرضه بکنه و ازش کسب درآمد بکنه دومین سخت در این قسمت کار اینه که با ایده کارافرینی و با حوست کارافرینی مبارزه بکنیم یعنی یک شما آرد نمک مخمر رو در یک کاسه هم میزنید آب رو میریزید مخلوط میکنید و 18 ساعت هیچ کاری نمیکنید تو این 18 ساعت میتونید به پنجره نگاه کنید برید پیاده روی، کتاب بخونید من این کار رو یا با یا با خانمتون تخت بازی کنید یا با دوستتون تلفنی صحبت کنید ایده اینه که ایش کاری انجام ندهید و بعد از 18 ساعت خمیر رو از تون کاسه در میارید، به اندازه که خمیر رو چونه کنید یعنی فقط یه بار یه مستطیل ازش درست کنید و چارگوچه رو بکنید زیرش و یه توپ بشه با هاش ور میرید بیشتر این رو میذارید روی یه پارچه آغشته به آرد و روش هم یه پارچه آغشته به آرد میکشید دو ساعت میمونه و هیچ کاری تو این دو ساعت نمی کنید با اون آرد با اون خمیر نیم ساعت مونده به دو ساعت یعنی یک ساعت و نیم پس از هیچده ساعت در دمایی 235 درجه یا یکم بیشتر یا یکم کمتر همراه با زرف داخل فر بعد از نیم ساعت زرف از فر در میارید خمیر رو توش میدازید یکی دو تا تکمون میدید نه بیشتر خمیر رو له نمی کنید یک نباخ پخش نمی کنید تو زرف این بزرگترین اشتباهی که ممکنه بکنید. در ظرف رو میذارید توی فر به مدت نیم ساعت بعد در ظرف رو برمیدارید در دقیقه رو به دیگه نون شما آماده است اگر این کار رو شما برای سی بار تونستید بدون اضافه کردن خلاقیت ایده های نو و حوث کارآفرینی انجام بدید شما میتونید اولین قدمتون رو برای یک زندگی نسبتاً آری از کار یعنی بدون اینکه شما کار بکنید داش این این تست اولی اولیه است این تست اولیه‌ای که من میتونم بعد از این نزد ها بگیرم که ببینم آیا میتونن کار نکنن تو زندگی آیا قادر قادر به کار نکردن هستن در عمل آیا قادرن کنترل زندگیشونو به ابر و باد و مه و خورشید و فلک بسپرن آیا میتونن رها کنن کنترل زندگیو و بعد هر ازشون کسی پرسید که شما چی, کار، چی کاریید چی کار می کنید، بگن بگن ما نون میپذیم نون خودمونو میخواییم راستش این جواب بهتری نسبت به اینکه من هیچ کاری نمی کنم چون به بحث که بگیم من هیچ کاری نمی کنم همه میپرسم خب شما درامنتون از کجا چجوری پول در میارین ولی اگه بگین من،, من نون میپذم شاید از فکر کن شما نون با هستین و بعد دوباره و بعد دوباره این حو کارآفرینی در شما تشدید بشه و بعد بیشتر تلاش کنید که با این حوسه کارفرینی مبارزه کنید و بعد اگر ازتون توضیح خواستن که نونتون رو کجا میفروشی که من فقط به این خودم نو میپزم و این مجروج رو از ذبتر بعد میپرسن که خب درآماتون از کجاست میومد به درآمد نیاز نذارم چون نون خودم و خودم میپزن بعد سوالای های احمقانی دیگه ای پیش میاد مثل اینکه مثلا خب بقیه چیزا چی اجاره خونهتون از کجا میده و بعد شما جوابی ندارین که بدین تا زمانی که نون بیشتری بپذین و به همین روش ولی و کمتر دست ببرین توی فرایندهای طبیعی این, این توصیه من به شماست به همه شما که دوست دارید هیچ کاری نکنید به شرط که درآمد کافی داشته باشین با پختن نون من به شما قول میدم که ظرف یک سال ثروتمند میشیم و موفق و خوشبخت و همه چیزهایی که تو زندگی میخواین و هر چیزی که فکرشو بکنید بعد از یک سال صرفاً با پختن نون هفتهی سه بار به دست قاید آورد و, و چون نونی میخورید که کامل و سالمه همه بیماریایی که دارید برطرف میشه و سیستم ایمنی بدنتون به قدری قوی میشه که هیچ بیماری دیگه ای هم نمیگیرید و پوستتون جوان و شاداب میشه و تا حداقل 120 سال عمر میکنید البته چیزی که مهمه توی این نون آردشه و باید موفق بشید که آردی پیدا بکنید که این این خواص رو داشته باشه. خوشبختانه من این شانس رو داشتم که یه همچین اردی پیدا بکنم و فردا قراری که بریم و اون آرد رو بگیریم. حالا بعد از اینکه این آرد رو گرفتیم، داستانش رو من توی پادکست بعدی براتون میگم چون پادکست بعدی هم قطعا در مورد نون و نون پختن خواهد بود. همه پادکست‌ها از این به بعد به نوعی مربوط به نون و نون پختن خواهد بود. اینکه چه نون نون رو درست می‌کنید و نون رو میپذید و نون رو می‌خورید و این فرایند عمدش مستلزم اینه که هیچ کاری نکنید و هیچ تغییری در این فرایند ندید بنابراین هر پادکست نسبت به پادکست قبلی در اونجایی که مربوط به پختن میشه کاملا مشابه خواهد بود آره مهم اینه که این آرت همه چیزهایی که گندم داره رو در خودش داشته باشه یعنی در یک فرایند طولانی صنعتی همه چیزش از همه چیزش جدا نشده باشه سختی سختی این که شما بشینید و هیچ کاری نکنید تاయన از اینجا میاد به خاطر اینکه شما در یک فرایند یعنی از همون زمانی که لوحتون رو می نوشتید و یه نفر شما رو به چوب می بست حالا این چوب یه متافوریه که مظاهر مختلفی در عالم واقع و در زمانهای مختلف و در فرهنگهای مختلف میتونه داشته باشه ولی این این چوب متافور اینی که یا سمبول اینی که یه سری چیزی از یه سری چیزی جدا میشه همجوری که در پروسسینگ گندم در آسیاب صنعتی همه چیزش از همه چیزش جدا میشه یعنی نشاستش، پوستش صبوسش جوانش، آنزیماش نمیدونم هر چیزی که فکر بکنید به خاطر راحتی کار در آینده به خاطر سهولت در نگهداری به خاطر افیشینسی در پخت به خاطر کنترل کیفیت در ظاهر این کنترل کلمه کلیدی اینجا. زمانی که شما شروع به بزرگ شدن می کنید یعنی ما به عنوان یک بچه آدم همه چیز شروع میکنه به از همه چیز جدا شدن. مثلا توی مدرسه ریاضی از فیزیک، فیزیک از شیمی، شیمی از ادبیات اینا همش از هم جدا میشه شما ریاضی رو جدا از درس عربی یا زبان انگلیسی یا ادبیات فارسی یاد می‌گیرید. سال، دو سال، سه سال، ده سال، 15 <تصفح> سال اینا از هم جدا شده. بعد پول و اقتصاد رو جدای از اخلاق دیگه چی؟ رانندگی رو جدا از فرهنگ، فرهنگ رو جدا از غذا خوردن، غذا خوردن رو جدا از خوابیدن خابیدن رو جدا از ازدواج و ازدواج رو جدا از مرگ همه مفاهیم رو به شکل کاملا جدا تیکه تیکه توسط معلم مختلف کتاب مختلف فیلم و سریال مختلف اکس مختلف و هر رسانه مختلفی که سعی در جداسازی اینها می‌کنه به شما داده میشه و یکی از این چیزهایی که به شکل خیلی عجیب بریب از برقیه چیزا جدا میشه کاره که شما باید برین سر کار کار کنید حقوق بگیرین یا حالا کارافرینی بکنید و این سری چیز به این سری آدم بفروشید تا بتونید امرارو معاش بکنید و بتونید زندگی بکنید کار از زندگی جدا میشه و شما نمیتونید بفهمید قبول بکنید درک بکنید که کار میتونه از زندگی جدا نباشه ای این این این چیزیه که در سطح پارادایم، در سطح جهانبینی، درکش برای آدمی که از یک سالگی همه چیزش از همه چیزش جدا شده، غیر ممکنه. بنابراین در مقاطعی شما نیاز دارید که زندگیتون رو مثلا با تفریح میکس بکنید یا کارتون رو با مرخصی میکس بکنید یا از کارتون لذت ببرید، لذت رو با کارتون میکس بکنید. این میکس کردن دقیقا مثل ریختن سبوس، روی نونه این اتفاق بزرگی نیست این کار خاصی انجام نمیده یا مثل غنی کردن شیر با ویتامین D3 با این ویتامین D3 کجا از کجا میاد من میخوام همون همون چیزی که توش هست و بخورم چه چیزی ویتامین D3 داره همونو به من بدید چرا من باید شیر غنی شده با ویتامین D3 بخرم بخورم چرا باید آب میوه قنی شده با کلسیوم بخرم این کلسیون کجاست این دانه های رنگی کجاست این اومگا کجاست چرا من باید یه چیز رو که با یه چیز دیگه قنی شده بخرم چرا من باید زندگیمو با یه چیز دیگه قنی بکنم و اگر شما در طی اون 18 ساعت این کاسه خمیرتون رو که در حال تخمیر هست نگاه بکنید کم کم خیلی کندی در طول اون یک سالی که گفتم متوجه میشید که چجوری چیزهایی که از هم جدا نشدن یک پارچن انتگریتدن توسط یک نیروی بزرگتر که اینجاست اینجا اسمشون شیمی و ترکیبات شیمیایی تحولات بسیار بزرگ از نظر ما و خیلی مجزه درشون اتفاق میفته و ما میتونیم نعمات خیلی عجیب رو از اونها حاصل کنیم خب فکر کنم کافی من به شما توصیه کردم به مدت یک سال هفتهی سه بار حد نون میپذید دیگه چی کار کردم در هفتهی که گذشت ها یه مراسم اخت کنان رفتیم اخت کنان اخت کنونه اخت کنان یا عقدکنون کنون اخت کنونه من فکر کنم اخت کنان دارست اخت، مراسم اقد خواهرزادی خانومم بر خلاف میل باطنیم بدونین که البته این رو نشون بدم رفتیم این مراسم عقد ولی خیلی خوش گذشت در نهایت اولش ولی من خیلی سخته به خطوری که اضطراب اجتماعی یعنی سوشال دارم و اون لحظه اول که شما وارد یه جمع بزرگی میشیم و یعنی من وارد یه جمع بزرگی میشم و باید با یه اده زیادی سلام علیک کنم بسیار شکنجست برای من بسیار کار سختیه بعد میرم یه گوشه که کسی منو نبینه میشینم، یه جایی که مثلا یه گلدونه گل بود و نصف صورت هم از دید مخفی میموند اونجا نشستم و یه در دقیقه یروپی گذشت نسبتا آروم شدم ولی بعد دوباره شروع شد و این چی میشه گفت فارسی این فرنز فرنزی اکاسی فوتو فرنزی من میتونم فقط بهش بگم این فستیوال عکس گرفتنی که عجیب قریبه یعنی هر کسی یه گوشی موبایل داره که دوربینم هست و در ترکیبات مختلف دو نفره، سه نفره، چهار نفره یعنی N فاکتوریل زب در N فاکتوریل, N فاکتوریل که N تعداد آدم M تعداد گوشی ها که معمولا مساویه مگر این که یه نفر یکی دو نفر دوربینم دارم به بجز موبایلشون این تعداد ترکیبات مختلف رو شما باید اکس بگیرین و این تازه شروع کار زمان که عرستامات میان و در اتاق عقد میشینن ترکیبات پیچیده تری از اکس های گروهی با عرستامات هم باید گرفته بشه که خب طبیعتا از شما دعوت میکنن تو همه این اکس باشی. نمیشه هم بگی نه یعنی من دو سه بار گفتم نه ولی اصرار به قدریه که نمیشه بگی نه البته <تصفيق> خوشبختانه برای من این خبر خوبیه به خاطری که این نسبتا راحت تر از اون اصراریه که دعوتت میکنن که برخصی اون, اون خیلی کار سختیه برای من و الان چون به حال نسبت بیشتری از زمان صرف عکس گرفتن میشه تا بزن و برخ در یک مراسم اینچنینی نظر میاد که آدمایی که مثل من سوشال انگزایتی دارن در آینده وضعیت بهتری خواهند داشت در مراسم اینچنینی در هر صورت از این دو سه مورد که یعنی معرفی یعنی سلام که اولیه عکس گرفتن و اصرار به شرکت در رقصیدن از اینا که بگذریم در مجموع خوش گذشت در مجموع دیگه من نیمونم چی نیمونه در مجموع اون, اون فواصل بین این حرکت بود که من میتونستم اونجا راحت بشینم و به بقیه نگاه بکنم حتی من هم تنها نبودم راستش رو بخواه کسای دیگه هم بود، بودن که نشون میداد اه, یعنی من حس میکردم که زمانی که ازشون خواسته میشه عکس بگیرن یا برخصن کاملا <تصفح> معذب کاملا میشدن مثل من و نگاه کردنه به اونا حس خویه به هم میداد که اولا معذب بودنی اونا رو به عنوان یه آینه ای از معذب بودن خودم میتونستم ببینم و حس خودم رو بهتر تحلیل بکنم و بعد این حس که تنها نیستم اینم حس خوبی بود دیگه چی میتونم براتون بگم از اون مراسم؟ آره قسمت خ... یه چند تا نکته با منظم داشتیم یکی اینکه این, این مراسم در یه ای بود که برای همین کار تجهیز شده و اجاره داده میشه و مثل،, مثل بعضی از این فیلم‌ها که اه، اه، توش قاچاق مواد مخدر میکنن یه نفر با یه بی دم در وایساده بود که اصلا شغلش همین بود و ما رو هدایت کرد داخل خونه رفتیم و در،, در اون خونه که شمالی هم بود همیشه بسته بود من یه چیزی تو ماشین جا گذاشته بودم رفتم که بردارم دیدم در بسته است و از داخل نمیشد در رو باز کرد به هیچ وجه و بعد که از کسایی که به حال صاحب, صاحب مجلس بودن کمک گرفتم برادر عروس اومد و پشت در گفت بیا الان من در رو برد باز میکنم رفتیم پشت در و چند تا زد به در گفت الان کسی که این پشته این در رو از بیرون برای ایما ای باز میکنه دو سه تا ضربه زد به در و در باز نشد و گفت اپا سقا سقا و من اون حماقت اون لحظه رو تصور میکردم که یک آبری از پشت در رد چه و ببینه که دو نفر از پشت در یعنی از داخل خونه در میزنن و یه نفر رو بیرون خونه صدا میکنن عباسقا زایرم پوستش رو ترک کرده بود یعنی دقیقا کاری رو که باید انجام میداد معلوم نبود در اون لحظه کجا بود و هر اتفاقی که میخواست برای ما بیفته میتونست به خاطر عدم حضور عباسقا بیفته هیچی من بیخیال شدم بیخیال شدم و برگشتم توی خونه و از ادامه مراسم لذت بردم یه چیز دیگه ای هم که خیلی نظر من رو جلب کرد این بود که مراسم دیجی داشت البته مثل هر مراسم دیگه ای که این روزا یا توی چند سال اخیر ممکن اتفاق افتاده باشه دی جست لاین فک مراسم اغلاروسیه و نه تنها یه نفر بلکه دیجی دو نفر بود یعنی یه مراسمی که کلن پنجاه نفر درش شرکت نداشتن دو تا دی‌جی داشت و این دیجی یه میز سه در به شکل ثابت در گوشه ای از سالن تعبیه شده بود براش سفید و خیلی زیبا و مدرن که در سه پله تجهیزات دی‌جی قرار داده شده بود یه دونه لپ‌تاپ پله بعدی یه یه بوردی که این سویچ های بالا پایین کردن تنظیمات دیژهی بود سومیش شدم نیست سومیم هم یه تجهیزات دیگری بود پشت دیژهی یه پلتفرمی بود که مثل یه داربست چندین لوازم رخص کارگذاشته کار گذاشته شده بود و پایین پای دیژهی هم این طرف یه ماسماسکی بود که ازش هر چند وقتی یه دودی بیرون می اه، اه، که بسیارم چشو می سوزون چشو حلقو می سوزون ولی مثل ظاهران قبول بخار باشه و این حس بخار رو در اون رقص نور توی اتاق توی فضا القاب بکنه ولی صرفا بخار نبود یعنی یه هم بود داشت و هم یه سوزش ایجاد می کرد که من در آخر ازشون تغاظه کردم که اینو خاموشش کنم ولی این کار رو نکردم و روی اون میز به انگلیسی نوشته شده بود دی جی. یعنی شما بعد اگرم نمیدونستید بفهمید که اون فرد دی هست و این دی جی کاری که کنه از نظر من هیچ چیزی فراتر از این که چند تا آهنگ رو پخش بکنه نیست گه کداری یه گوشی هم میذاشتن گوششون و یعنی هدف هدفون هد و با این دکمه بعضی وقتا بر می من تغییر ملموسی توی کیفیت موزیکی که پخش می شد نمی و جالب تر از اینی که این دی ها هیچ توجهی به حس حال آدمها در اون سالن نداشتن یعنی کار خودشون نمی و مطابق حس خودشون موسیقی پخش میکردن این از همش جالب تر بود یعنی یه روتینی داشتن که بعد انجام میشود مثل مردشوری که مردش رو میشوره و کاری به بهشت و جهنم رفتنش نداره و حتی بعد از یعنی در آخرین لحظه که برای بود دیگه شام سرف بشه و همه رفته بودن که از طبقه دوم کنه. قضاشون رو بکشن و بیان نوشه جان کنن بلندترین و پر صدا ترین موزیکی که میشد پخش کنی رو داشتن پخش میکردن و قیافه همه آدم ها رو اگر دقت میکردین شما بجوز عذاب و امزجار و تنفر چیزی نبود و هر کیم که بهشون میگفین این رو صدا شو کم کنید اینا گوش نمیکردن چرا واقعا <تصفح> یه مراسم به دی نیاز داره و هر صورت گریزی نیست شما اگر میخواین مراسم شادی داشته باشین حتما باید یه دی جی استخدام یکی از مشغولی که کاملا قابل درکی یعنی مثلا اگر کسی شغل شما رو پرسید و نتونستید بگید که من ایش کاری نمیکنم یا نخواستید بگید که من نون خودم رو درست میکنم بگید من دیجی هستم ایش کی سوال اضافه نمیکنه کاملا همه درک میکنن که شغل شما چیه توی یک ماه گذشته یا توی آخرین مراسمی که شرکت داشتن حتماً یکی دو تا دیجی دیدن و کاملا نشباط برقرار میکنن با فرایند شغل اینا کاری که انجام میدن و درآمدی زیادی که دارن مثلا برای شب چند میلیون تومان میگیرن که چند تا آهنگ باز کنن شغل ایداله اگر نخواستید نون خودتون رو بپزید بهش دیجیش ولی در کل خوش گذشت یعنی شب بود که بعد از اتمام مراسم من من حس خوبی داشتم و از خونه که بیرون میومدیم اومدیم دمی دم در بود و بهش گفتم خیلی ممنون عباس و نمیدونم متوجه شد که من یعنی کنچکاف شد که به من اسمشو از کجا یاد گرفتم یا نه ولی در صورت هم خواهش کرد و خدافزی کردیم دیگه چی کار کردم توی نفته؟ آن پری روز رفتم بیمارستان پدرخانمم اونجا بستری شده بود یه شب و قرار بود که روز جمعه مرخص بیارنی پنگشن به شب خوابیده بود قرار روز جمعه مرخص بشه و اونجا هم یکی از سحنه های خیلی نادری که یه انسان میتونه ببینه دیدم که بد نیست براتون تعریف کنم ساعت هشت صبح قرار بود که ایشون مرخص بشه و دکتر و کادر فنی اجازه ترخیص ایشون رو داده بودن و خانمم رفته بود که صندوق بیمارستان تصویر حساب بگیره بهش گفته بودن که داروخانه بیمارستان تحتیله و باید صبر بکنه شاید دوازدهیم باز بشه، حالا چرا دودهیم و, و چرا شاید هرگز ما جوابش رو پیدا نکردیم؟ ولی ذارا هیچشاید دیگه ای نبود و تا دودهیم بعد صبر میکرد از 8 صبح که شاید داروخانه بیمارستان باز بشه. من حدود دوازده ظهر رسیدم بیمارستان در کم در کمال ناباوری اون پایین توی لابی بیمارستان گوشه لابی دارخونه واقع شده بود که شیشه دارخونه با یه با یک کرکره کاملا از این کرکره های مدرن بسته شده بود و روش یه کاغذ زده بودن که دارخونه به دلیل به علت انبارگردانی تا یکشنبه دو بعد از ظهر تعطیل می باشد همین. و کسای دیگه هم که برای ترخیص می اومدن صندوقدار بیمارستان که یه قسمت دیگه از لابی قرار گرفته بود با تندترین لحنی که شما میتونید تصور بکنید بهشون میگفت که تا 12.5 صبر بکنن اگر تسویه حسابشون اومد تسویه حساب میشن اگر نه بشینن تا بیاد این جوابی بود که صندوقداری بیمارستان در یکی از بیمارستان‌های نسبتا خوب و معروف تهران به همراهان بیمار میداد و من نمیتونم اقراق بکنم نمیتونم بگم که چقدر لحن این آدم بد بود و چقدر گستاخانه ادبانه و با فریاد این رو به کسانی که بهش مراجعه میکردن میگفت. و من خیلی خیلی سعی کردم که جلوی خودم رو نگه دارم و اتفاق غیر نایسی اونجا نیفته من به عنوان یه فردی که اصلا هیچ کار هست اونجا نشسته بودم تو لابی و این ورنگاه میکرم در همین حین یه نفر که لباس خدمتکاران بیمارستان یعنی نظافتچی رو پوشیده بود اومد و رفت به صندوق دار. یه چیزی گفت ازش یه برگه گرفت و رفت در داروخونه رو که توی راهروی بود زد و در داروخانه باز شد و برگه رو داد بهش و من حس کردم که این داره تصفیه حساب یه نفر رو از داروخانه میگیره یعنی داروخانه باید هر چقدر هم که انبارگردانی بکنه یا هر کار دیگهی خب قاعدتاً باید به صندوق اعلام بکنه که فلان مریض این میزان دارو یا لوازم هر چیزی گرفته و از این اینقدره یه همچین اطلاعاتی رو باید منتقل بکنه حالا یا از طریق سیستم‌های کامپیوتریشون یا اگر ندارن روی یه برگ کاغذ. من به خانومم که تبقیه دوم بود زنگ زدم و گفتم طبقه اول گفتم که یه همچنین اتفاقی داره میفته و مام بهتری که یه نفر رو پیدا بکنیم که این کار رو برای ما انجام بده و خانومم گفت که من دارم میام پایین اومد پایین و دیدم که یه راست رفت سراغم آدمی که پشت در داروخانه بود و دیدم که شروع کرد باش حرف زدن منم رفتم نزدیک شدم و اون آدم که بعدن خانمم گفتیه که از نظافتچی اون بخش بوده بهش گفت که اینو صندوق شما نمی داد ولی من ازش گرفتم و تا چند دقیقه دیگه این تصویر حساب رو می گیرم راحت باشه حال شما کل تصویر رو دارید بیماری که بسیار درد داره و با مورفین یعنی با چند تا مورفین دردش آروم نمیشه و این باید مرخص شده بره خونش از ساعت 8 صبح تا دوازده ظهر معطل داروخانه بوده که داروخانه تعطیل به اون مفهوم نبوده یعنی پرل داروخانه در داخل داروخانه بودن داشتن انبارگردانی و هر غلتی که بعد می و میکردن. و اینا اجتناب میکردن از یه کار کوچیکی که تصویر یعنی اطلاعات، دورهای مصرفی بیمار رو به صندوق بدن و صندوق تصفیه حسابی بیمار رو بکنه و بیمار از اون بیمارستان خلاص شد و بره خونش به اضافه اینکه رفتن بیمار به معنی اینه که یک تخت خالی میشه و یه نفر دیگه که درد داره و بیماره میتونه بستری بشه و درمان بشه و بعد بعد از گذشت ساعت‌ها یعنی بعد از گذشت چهار ساعت نظافت بیمارستان؟ که شغلش نظافت اون بخشه و تمیز کردن اون بخش باید شغلش رو رها بکنه یعنی قادر باشه که شغلش رو رها بکنه و بیاد کار تصفیه حساب بیمار رو به شکل, به شکل غیر, غیر رسمی به شکل زیرمیزی و به شکل غیر قانونی در یک مسیر استلاحاً پارتی بازی برای شما انجام بدهید که زمانی که این کار انجام میشه شما 10000 تومان 20000 تومان هر چقدر بسته به لطفتون بهش انعام یا شیرینی بدین این, این رو من خیلی خیلی سعی کردم که تحلیل بکنم و چرخه تأمین یا چرخه عرضشش رو توی ذهن خودم شکل بدم من فکر میکنم این به در درجه اول به مدیر اون بیمارستان و به رئیس اون بیمارستان که قطعا به کل این فرایند واقف هست یا به بقیه دکترایی که جراح هستن تو بیمارستان و بالاخره روزی پنج بار از جلی اون دارخونه که اون برگر رو روی کرکرش میخونن که به علت انبارگردانی تا یک شنب. یعنی روز جمعه این زده شده تا یک شنبه تعطیله حتما اینو میبینن و حتما میدونن که نظافت چیشون که همچین کارایی میکنه و هیچ کاری بابتش نمیکنن اسم این رو به جز پایمال کردن حقوق بشر چی میشود، چی میشه گذاشت یعنی صرفا حقوق بشر که تو جنگ و توی زندان ها پایمال نمیشه یه کسی که جراح هست فوق تخصص یک رشته پزشکی رو داره و به ظاهر جون آدم‌ها رو نجات میده چون این شکنجه و چون این عذابی رو میتونه بر تعداد زیادی بیمار تحمیل بکنه و همراهان نگرانشون و, و, و, و, و راحت در بره یعنی دستگیر نشه، محکوم نشه، تنبیه نشه این به جز پایمال کردن حقوق بشر در یه سطح گسترده و سیستماتیک چی میتونه باشه؟ شما حتما باید نسل کشی بکنید تا تا, تا محکوم شید به پاییمال کردن حقوق بشر حتما باید یه دادم و بیگناه زندان بیاندازید، شکنجه بکنید تازه قاضی که یه نفر رو بیگناه زندان انداخته و شکن این بالاخره بعد ده سال پنج سال 20 سال گندش در میاد و یه جوری میگیرنش توی همین اثر معاصر خودمون شاهده بسیاری از این موارد بودیم به ندرت شده کسی یه همچین کارایی بکنه و بتونه ازش فرار بکنه ولی ما پزشکانی داریم که در مستر ریاست یک میمارستان جنایت هایی میکنن که لزومن کشتن فرد نیست کشتن وقتشه کشتن آرامششه. در یه همچین قالبی و بعد اجازه میدن که صندوقدارشون با،, با یه همچین لحنی با همراه های بیمار صحبت بکنه چه کسی به جز یک سایکوپت به جز یک جانی به جز یک کسی که مشکلات شدید روانی قطعا داره میتونه یه همچین بیمارستانی رو ریاست بکنه در هر صورت این، اینم،, اینم, یک، اینم یک مشاوره شغلی دیگر است اگر شما سایکوپت هستین اگر از، اگر سادیست میدارین اگر از شکنجه دیدن دیگران و دردمند شدنشون لذت میبرین میتونید در مشاغل مختلفی در بیمارستان های کشور از جراح و رئیس بیمارستان گرفته تا صندوقدار و مدیریت داروخانه داشته باشید و در سطح گستردهی بدون که آب از آب تکون بخوره و شما متهم به هیچ جرم و گناهی بشید درآمد زیادی کسب بکنید بدون منطق بدون دلیل میتونید دیگران رو آزار بدید اینم, اینم شغل خوبیه برای شما اگر سایکوپتین اگر خودشیفتگی همراه با سادیسم دارید اینم اینم شغل خوبی میتونه برای شما باشه من به بیمارستان رفتم صندوقدار بیمارستان مرا به چوب بست من به بیمارستان رفتم برای ملاقات نگهبان بیمارستان مرا به چوب بست من به بیمارستان رفتم برای تصفیه داروخانه مدیر داروخانه مرا به چوب بست واقعا چه فرقی بین اون دی‌جی که 22 سالشه و خودا میدونه چی تو کله‌اش و ساعت 11 شب با پخش کردنی آهنگی که شاید برای اده نوجوون خیلی مناسب باشه و اینو بتونن با بلندترین صدا گوش بدن و لذت ببرن ولی برای یه دادم که عمدتاً بالای 40 سالن دیگه یه مدار مقدار عذاب‌آور باشه این رو پخش می‌کنه و هیچ اهمیتی براش نداره هی دازن شت این کلمه واقعیش کلمه اینه doesn't give a shit کلمه دریفترش اینه که یعنی جمله دریفترش اینه که doesn't give a fuck چه فرقی هست بین این و اون رئیس اون بیمارستان یا مدیر اون بیمارستان که سیستمی رو مدیریت میکنه که بیمارانی و آدمایی درش در این حد رنج میکشن الو به این معنی نیست که در اونجا کسی مداوا نمیشه در اونجا پرستور ها که مثل یک فرشته جون آدم رو نجات میدن به سلامتی و درد آدم ها میرسن و از جونشون میگذرن و از سلامتی خودشون میگذرن که به آدم سرویس خیلی عالی بدن این،, این به این معنی نیست هرگز به معنی نیست همونجور که به معنی نیست که توی زندان های آشویتس هیتلر کسایی نبودن از آلمان که درد میکشیدند و رنج می بردن از اینکه دوستاشون دارن آدم‌ها رو شکنجه میدن حتما اونجا هم کسایی بودن که به زندونیا کمک میکردن از آلمانیا ولی وقتی یه سیستمی در این حد واقعا دازن گیور فاک که اونجا آدما اومدن درمان بشن و در این حد بدون دلیل رنج براشون تحمیل میشه و هیچ کسی هیچ اهمیتی نمیده به اینکه اطلاعات داروی مصرف شده یک بیمار که از داروخونه تا صندوق میتونه ظرف یک دقیقه یا حتی کمتر برسه چرا باید 4 ساعت 5 ساعت و در یک, و در یک بازی این نامشخص صندوق دار بگه که اگه تا 12.5 اومد تصویه میشه اگر نه میشینی تا بیاد چطور همچین چیزی در سال 2017 یا 1395؟ در روزهای پایانی ازهای 395 میتونه توجیح داشته باشه در زمانی که هر, هر خبری هر،, هر چیزی روی اینترنت به طرفتل اینی پخش میشه و این یه بار دوبار صد بار نیست. یعنی هر کسی صد ها از این داستان ها توی بیمارستان های کشور داره چه فرقیه بین اون دیجی، بین اون گوساله ساله ساله و یه پزشک یه متخصص 45 ساله چه فرقیه صورت تا هفته بعد نون بپذید هفته سه بار به جز که گفتم هیچ کار اضافه نمی کنید تصور اینکه که کارافرین بشید و شما یه بیزنس نونبایی را بندازید و حتی اقل برای یک سال باهاش مبارزه بکنید چون یه بار شما یا دو بار نون می معنیش این نیست که شما میتونید هم نون بپذید و هم به مردم نون رو بفروشید اگر, اگر اون راه رو برید احتمال زیاد خیلی زود یا منجر به ورشکستگی میشه یا منجر به اینکه شما هم نونی میپذید که برای افیشنسی و برای سود همون آردی رو تیعیه میکنید که همون سنگکی سر کچتون تیعیه میکنه و همون کاری رو میکنید که اون میکنه و در نهایت نونی تیعیه میشه که به لعنت خدا نمیارزه فعلا نون خودتون رو بپذید بخورین و تا هفته بعد در پادکستی دیگه خدافظ